افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ. به نام خاله یگانه، آن خدای قادر و مهربان سرام افسانه ها عظیمترین جذابترین و قنیترین گنجینه ادبیات شفاهی مردمان هر سرزمین که عمری به درازای آفرینش انسان دارند یکی دیگه از افسانه های زیبا و شنیدنی مردمان جهان رو براتون نرد می به نام افسانه دو سکه از سرزمین مردمان سربستان برگرفته از کتاب ملتها قصه میگویند بخش افسانه های سربستان به گردآوری استفانوویچ کراچیچ ترجمه خانم مهین رادپور در روزگاران قدیم در سرزمین سربستان مرد فقیری زندگی می کرد. این مرد برای بدست آوردن پول و سیر کردن شکمش چه که پیش می اومد می خرید و می فروخت. روزی از روزا مرد کیسه ای رو از خزه کرد و روی اونو با مقداری پشم پوشوند و به طرف بازار برافتاد تا اونا را بفروشه هنوز نیمی از راه رو نرفته بود که توی راه به مرد فقیر دیگه ای برخورد کرد این مرد هم کیسش رو از پوست گردو پر کرده بود و روی اونو با مقدار گردوی درسته پوشونده بود تا به بازار ببره و بفروشه اونا چون راهشون یکی بود با هم به گفتگو مشغول شدن مرد اولی پرسید توی کیسه چیه؟ مرد دوم جواب داد گردو مرد دوم نگاهی به کیسه مرد اول انداخت و پرسید تو توی کیسه چیه؟ مرد اول جواب داد کیسه من پر از پشمه اونا راهشون ادامه دادن نیمه های راه مرد اولی به مرد دومی گفت بیا کیسه هامون رو با هم عوض کنیم مرد دومی قبول کرد و هر دو کیسه هاشون رو با هم عوض کردن ولی مرد اولی گفت چون پشم گرونتر از گردوه تو باید دو سکم دستی به من بدی مرد دومی که چیزی نداشت به مرد اولی بده گفت من دوت سکه به تو بده کارم و هر وقت که باشه این پول رو به تو میدم و حالا به خاطر اینکه خیالت از این بابت راحت بشه بیا با هم عهد برادری ببندیم مرد اولی قبول کرد و اونا دستای همدیگر رو فشار دادن و با هم روبوسی کردن و هر کدومشون به طرف منزل خودشون برافتادن. توی راه هر کدوم فکر میکردن که دیگری رو گول زدن اما هم که به منزل رسیدن و کیسه‌ها رو باز کردن فهمیدن که بله هر دوتاشون گول خورده مدتی گذشت مردی که پش فروخته بود به خیال پیدا کردن برادر خونده خودش و گرفتن دو سکه به بازار رفت و بالاخره بعد از جستجو و این طرف و اون طرف دویدن فهمید که برادر خوندهش پیش کشیشی کار میکنه با خوشحالی رفت و بهش گفت ای برادر فکر نکن که من نفهمیدم تو منو زدی یا مرد دوو می جواب داد برادر تو چطور؟ میخوای بگی که تو راست گفته بودی؟ ها؟ آره؟ مرد اولی کم کم صحبت دو سکه رو به میون آورد و گفت: برادر، قرار بود که تو دو سکه به من بدی. این رو که فراموش نکردی، ها؟ مرد دومی گفت: نه نه نه نه اصلا، اصلا. درسته، من به تو دو تا سکه بده کارم ولی ولی الان حتی یه سکم ندارم که بدم باور کن اگه پول داشم همین الان با کمال میل تقدیمت میکردم بعد مکسی کرد و گفت توی باغ پشت منزل اربابم یه چاییه که ارباب گاهی به من دستور میده که با تنابی اونو به ته چا بفرستم و چند دقیقه بعد بالا بکشم من فکر میکنم که اونجا ته چا گوهرهای گران قیمتی رو اربابم مخفی کرده باشه مرد اولی با خونسردی گفت خب این چه ربطی به من داره من از تو طلبکارم نه از اربابت مرد دومی گفت امشب بیا اینجا تا ربطش رو بهت بگم مرد اولی به برادر خوندش گفت چه ای داری تو ها مرد دومی گفت امشب که اومدی منو با تناب بفرست ته چا تا هرچی اونجا بود بیارم بالا بعد با هم اونا رو تقسیم کنیم چطوره؟ موافقی؟ مرد اولی فکری کرد بعد پرسید تو؟ تو مطمئنی ته چا گوهرهای گرون قیمت هست؟ مرد دومی به تندی جواب داد البته که مطمئنم من حتی دارم اونجا چیزای با ارزشیه مرد اولی قبول کرد که نیمه شب به باغ پشت منزل ارباب بیاد و نخششون رو عملی کن نیمه های شب مرد اولی سراغ برادرخوندش رفت و چند دقیقه بعد مرد دومی با تناب مرد اولی به ته چه رفت اما هرچی نگاه کرد چیزی به جز مقداری گندم اونجا ندید که ندید خاص به برادرخوندش بگی که چیزی پیدا نکرده اما یه لحظه فکر کرد نه اگه این حرف بزنم شاید برادر خوندم. من 호텔 چوبز رو بره اون وقت جواب کشیش رو چی بدم ها به همین خاطر خودش رو توی کیسه بزرگی که همراه آورده بود مخفی کرد و سرش رو بست و با صدای بلند گفت برادر هر چی که به درد بخور بود توی کیسه گذاشتم اونو بکش بالا بعدم فکری به حال من بکن بکش بالا مرد اولی کیسه رو بالا کشید و با خودش گفت اه آه سنگینه؟ چرا اینارو رو با اون قسمت کنم ها آه. بهتره کیسه رو خونه ببرم برادر خوندم هم برای بالا اومدن از تهی چای فکر می میاد بالا آره میاد بالا اون کی کیسه رو به دوش کشید و به طرف منزل براغ افتاد مرد همونطوری که به طرف خونش میرفت چند تا سگ ولگرد دنبالش افتادن مرد شروع کرد به دویدن کیسه چون سنگین بود مرتب از روی شونه مرد پایین میافتاد مرد داخل کیسه که صدای پرسه سگها رو شنیده بود از توی کیسه گفت زود فرار کن بج فرار کن دیگه نهای این سگامارو کیک پارمون می‌کنن فرار کن مرد دومی همین که صدای مرد اولی رو از توی کیسه شنید با عصبانیت کیسه رو زمین گذاشت مرد اولی از توی کیسه بیرون اومد و گفت خوب <تصفح> خوب بازم میخواستی منو گول بزنی ها؟ مرد دومی جواب داد تو چی؟ مگه من گول نزدی و خود تو به جای اون گوهرهای گرم قیمت توی کیسه جا ندادی ها؟ خلاص اونها با هم دعوا و مرافع کردن و بالاخره مرد دومی قول داد که در اولین فرصت دو سکه ای رو که به مرد اولی بدهکار تهیه کنه و قرضش رو ادا کنه مدتی گذشت روزی مردی که پیش کشیش خدمت میکرد یعنی همون مرد دومی با زنش توی ایوون نشسته بودن که یهو چش مرد از دور به برادر خوندش افتاد که داشت به سراخش میمند مرد با دستپاچگی به زنش گفت من, من میرم روی تخت دراز میکشم تو پاچه سفیدی روی من بکش گریوزاری کن و بش بگو که من مردم تا اون برگرده باید شدش راحت بشیم زن هم همین کارو کرد مرد اولی به ایوون خونه که رسید با صدای بلند گفت روزتون بخیر این منزل فلانیه؟ اون برادر خوندهی منه زن با ناراحتی جواب داد بله همینجا خونهٔ برادر خونده تو ولی ولی بیچاره امروز روحش به آسمون پرواز کرد و زن بدبختش رو دنها گذاشت زن شروع کرد به گریه وزاری مرد اولی گفت خدا رحمتش کنه ما روزا و شبای زیادی رو با هم سپری کردیم. حالا بعد از مدت که من به دیدنش اومدم باید چون این پیش آمد ناگواری براش رخ داده باشه. من برادر بیوفایی نیستم. میمونم و توی تشیجنازه اون شرکت میکنم. باید باید اونو با احترام به خاک بسپاریم. زن گفت. ولی ولی آقا تا به خاک سپردن اون باید مدتی صبر کنید. باور کنید روح اون مرحوم راضی به زحمت خوندنش نیست مرد در جواب گفت چه زحمتی من چطور میتونم اونو تنها بذارم و برم من هرچند روزی که باشه اینجا میمونم اون برادر برادرخوندهی من بود به گردن من حق داره زن که این حرف شنید فورا به اتاق رفت و آهسته ماجرا رو به شوهرش گفت مرد هم گفت فوراً برو و کشیش رو خبر کن و مرده منو به کلیسا ببر اونجا بذار شاید برادر خوندم از مندن صرف نظر کنه مرده رو به کلیسا بردن و همه دوستان و آشنایان بعد از ادای احترام از کلیسا بیرون رفتن ولی برادر خونده حاضر نشد از کلیسا بیرون بیاد و گفت نه من اونو تنها میذارم آخه ما یه عمر با هم دوست بودیم با هم تجارت میکردیم نون و نمک هم رو خوردیم از غذا همون شب دی دوز به خونه یکی از پولدارای شهر رفتن و مقدار زیادی پول لباس و یه شمشیر گرانبها دزدیدن و بعد وارد کلیسا شدن تا در اونجا مال دزدی رو با هم تقسیم کنن برادر خونده که همون مرد اولی باشه وقتی شنید عدهای با سر و صدا وارد کلیسا شدن با عجله خودشو پشت ستونی این پنون کرد دوزداد چون میخواستن زودتر کار تقسیم انجام بشه کلاه یکی از رو پیمونه قرار دادن و پولهای طلا رو قسمت میکردن بالاخره همه چیز تقسیم شد و فقط شمشیر باقی موند یکی از دزدا گفت بهتره اونو امتحان کنیم چطور سر این مرده رو با اون بباریم ها؟ اگه با یه ضرب سرستر شدا شد معلومه که تیزه و به کارمون میاد مرده که همون مرد دومی باشه وقتی این حرفو شنید از ترس نزدیک بود راس بمیره و دید اگه دیر به جنبه سر از تنش جدا شده بنابراین یهو از جا پرید و فریاد زد آه! اهای مردها کجایین برادر خونده یا همون مرد اولی هم که خطر رو حس کرده بود با صدای بلند و رسا جواب داد ما اینجاییم همه حاضرین دوستا هم که این صداها رو شنیدند از ترس شمشیر و پولا و لباسها رو رها کردند و پا به فرار گذاشته دزدا وقتی از کلیسا دور شدن سر دسته گفت خب دوستان بدشانسی آوردیم یه دزدی کردیم از دیوارای مردم بالا رفتیم قصرها رو خالی کردیم حالا یه دفعه از صدای چند مرده مرد ترسیدیم و فرار کردیم حالا از بین شما چه کسی جرأت داره به کلیسا برگرده و ببینون که چه خبره همه سکوت کردن و از ترس رنگشون پرید بالاخره یه نفر از اون میون گفت من آزارم به کلیسا برگردم اما به شرط اینکه شمشیر مال من باشه. همه دزدا قبول کردن و دوز با سرعت به طرف کلیسا برگشت به در کلیسا که رسید آهسته از پنجره بالا رفت و نگاهی به داخل کلیسا انداخت. در همین حال شنید که یکی به دیگری می گفت پس دو سکه من چطور شد ها؟ زود باش، زود باش، دو تا سکه منو بده. در همین موقع چشم مرد دومی به کلاه دوز که از پنجره دیده میشد افتاد. چلو اومد و کلاه رو از سرون برداشت و به طرف مرد اولی پرد کرد و گفت بیا بگیر اینم عوض دو سکه تو. حالا دیگه دست از سر من بر می داری یا نه؟ دزده اینا رو که دید پایین برید و با سرعت هرچه بیشتر خودش رو به رفقاش رسوند و گفت آی رفقا نمیدونی چه شانسی آوردیم که زنده موندیم ما پولا رو با کلاه پیمونه میکردیم حالا ببینید مرده ها چند تا بودن که به هر نفرشون تا سکه رسیده تازه تازه پول کم اومده بود که کلاه منو برداشتن و به عوض تا سکه به یکی از اونا دادن سر دست یه دوزا این حرف رو که شنید فورا گفت آه. خدا به رم کرد بهتر ها که زودتر از اینجا دور بشیم اینجا موندن خطرناکه به این ترتیب مرد اولی و مرد دومی یا همون برادر خونده ها به ثروت باد آوردهی رسیدن و تصمیم گرفتن از این به بعد به درستی زندگی کنه. افسانه دو سکه رو از سرزمین سربستان براتون تو کردم برگرفته از کتاب افسانه های سربستان گردآوری دوک استفانوویچ کراچیچ ترجمه مهین راتور. عشق و علاقه به قصه و افسانه پردازی و شنیدن قصه و افسانه در تمام طول تاریخ با آدمی از کودکی تا کهنساری همراه بوده و حوادث و فراز و نشیب های افسانه ها توسط خود مردم شکل گرفتند. افسانه ها این گنجینه ارزشمند ادبیات شفاهی رو پاس بداریم و اونا رو ثبت، ضبط و احیا کنیم. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار سید نور نوربخش اجرا مهران دوستی صداوردار راهله قفاری تیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود